خب بسم الله الرحمن الرحیم خب شما تقریبا از این کتاب نحو الواضح قسمت سانویش چیزای که فکر کنم خوندید؟ یعنی چند درسی رو فکر کنم خوندید دیگه زیاد نخوندید همشون بحثای صرفی بوده؟ خب اینجا رسیدیم الفعل المعتل الفعل المعتل فعل بچه تقسیماتی دارد فعل یا صحیح هست یا موتل خود صحیح به سه دسته تقسیم می شود سالم محموز و مضاعف. فعل صحیح یا سالم است یا محموز هست یا مزعف است ولی ما دیگه رسیدیم به فعل موتل به فعل چی رسیدیم که معتل خودش تقسیماتی دارد اول میاد مثال بعدش اجوف بعدش ناقص بعدش دو لفیف الفعل المعتل بله آره مثال اجواف ناقص لفیف لفیف دوباره مفروق مقرون تضعیف جزء سالمه جزو صحیحه جزء, جزء معتل نیست الفعل المعتل آه؟ فرق صحیح و سالم و میخوای یا و معتل آره هر سالمی صحیح هست ولی هر صحیحی سالم نیست میدونی چرا به خاطر که صحیح انواع دیگه هم زیرش قرار داره مثل مضاعف مثلا مده مزعفه ولی صحیح هست چون حرف عله توش نیست حرف عله ک توش نباشه بهش میگن صحیح ولی این صحیح سالم نیست چرا چون دوتا حرف هم داره دو تا دال داره مده سعل محموز سالم نیست چون توش همزه هست سالمون است که مضاقف نباشد محموز هم نباشد موتل هم نباشد خوب الفعل الموتل و احکامه المثال اولین نوع فعل موتل مثال هست الامفله ابتدا امثلا رو ورد وعده ماضیش هست یعید مزارش هست عید امرش هست وصله یاسیلو سل این کروه اول بود و جلا و جلا یو جلو ای جل دقیق بفرمایید و جلا یو ای جل وجع، یوجع، ایجع. سعی کن دیمو یوجی، یوجی رو واقیش تو واجع. الیجانم؟ دیمو یوجی رو ایجی اگر امرش اون موقع میشه ایجل دیگه. خوب؟ آره این برواز یسعلو هست بچه‌ها این برواز اون چی است شما دقت بفرمایید دو گروه از امثله رو و مثال میدونید چرا بهش میگن مثال؟ چون مازیش مثل صحیح و سالم صرف میشه مازیش مثل سالم صرف میشه بیش میگن مثال خب و عدد تا آخر که مثل مسئله از فرقی نداره ولی در مزارهش قوانینی میآید یک اگر بر وزن یف باشد دیگر در مزاره واو هست می گردد می بینید و اده دیگه نشده یا ایدو شده چی؟ یا ایدو, یا ایدو. واف چی شده, شده است، حس شده است چون, چون مزاره بر وزن چی هست؟ است. یف ایلو هست خب ار که از مزاره ساخته می شود از تعیدو بر برمیداریم دیگه امر ساخته شد شد اد شد چی به همین سادگی ها گاهی ما گمان میکنیم که علم سخت هست ولی آسانتر از گمان هست بریم جلوتر استاد سهل. مم. اما گروه دوفمو اگر دقت بفرمایید میشود وجیلا یو جلو ای جل وجیلا یو جلو خب در این گروه از امثله می‌بینیم که واو هست نشده است. است. کی گفته اینو بت؟ این قانون اشتباهیه عزیز استاد بزرگوار. چی؟ باشد، يفعلوا باشد. چی؟ کلمه حذف واو. خب بله خب بله بله ادامهش بده و و در و این قاعده رو هر کجا خوندی خطش بزن از ذهنت اندازش دور مشکلی نیست چه ارشاد و صرف باشد چه کتابی دیگر هر وقت سوال قاعده چی هست قاعده نسکی تو که هر در مقابل یا یا آره بابا کلی نیست اینی که شما خوندید این یک قاعده کلی نیست ببینید قواعد به شکل مختلف میاد مثلا در کتاب در کتاب صرف میر به این گونه میاد زمانی که مزاره بر وزن یفعل باشد به شرط واو حذف می شود که حرف حلقی باشد دلسته. این الفل یا لام الفل دلسته دلسته. این میگه قاعده مم. خب بریم جلوتر مم. پس بر وزن یفعلو اگر باشد واب حسنه میشود مگر این که حرف حلقی بله که اینو خودش خواهد آورد القاعده قاعده فعل متلک بخونیم شما متوجه خواهید شد که چی میگوید قاعده بیست و پنجم یعنی شما تا اینجا بیست و قاعده رو بدون ما خوندید خوب تحذفو فاول, فاول مثالی المجردی فی المضارع والامری اذا کان واویان مكسور العين في المضارع حس می شود فعل فیل مثال مجرد نه مثال مزیده مثال چی؟ مثال مجرد مثلا اگر همین وعده رو ما به بب... ب... مزید ببریم دیگر داستان چونی نیست او یوعی دو دیدید کباب حس نشده؟ در مجردها خب تحذف فاء المثال المجرد في المضارع والامر حصف میگردد فاول الفعل فعل, فعل مثال, مثال مجرد در مزارع و در امر یعنی این واو در ماضی حس نمیگردد فقط در چه حصف می‌گردد؟ در مزاره و در امر اذا کان واوی یعنی زمانی که مثال ما چه باشد مثال واوی باشد مکسور العین این الفلش چه حرکتی داشته باشد؟ مكسور. بله این قائده هست فل مضارع، در مضارع پس هرگاه بروازن یفعلو باشد دیگه هرگاه بروازن چه باشد؟ یفعلو باشد به عبارت دیگر هرگاه این کسر داشته باشد این وابه هست میگردد و هرگاه کسر برداشته شد دوباره وابه بر میگردد مثلا در مجهول می‌بینیم که یعیدو مجهولش میشود یو عدو چرا؟ چون ان چه دارد این دیگه فتحه دارد دیگه آه. کسره که رفت واف هم بیچاره برگشت کسره خیلی زور دارد تو مثال حصف میکند واوی را که از حروف اصلیست چیمی سبینه این بند خدا گفته بود زمانی که این کسره داشته باشد در ایجل که فتح دارد تو کجای دنیایی؟ نه قاعده رو تقت بفرمایید ملاهای روزگار پس این قاعده ای بود که در ابتدال امر خاندیم اما الاجوف این قاعده رو در ذهن داشته باش. این قاعده رو در ذهن داشته باشیم خب الاجوف الاجوف اجوف یعنی جوف یعنی شکم شکم وسط است یا بالاست یا پایین وسطه به خاطرین به بی این بیچار میگن اجوف که حرف عله در وسط است حرف عله کجاست وسط است قال ساله الامثله ساله یا سولو تو چرا سلطو رو آورده چرا ام رو اینجا نآورد؟ در حالی که در مثال ماضی و امر رو آورد ولی اینجا نه علت این هست که علت این هست که در مثال ماضی در تمام سیغه ها به یک گونه سرف نمی شود فهمیدید در بعضی سیغه ها هست وجود دارد ولی در بعضی سیغه های دیگر حسفی وجود ندارد در ساله حرفه تبدیل شده است به حرفی دیگر ولی حسف نشده است سالا سالا صالو صالت سالتا در اصل بعد بگویم صال نه در اصل بعد بگویم چی؟ صال نه ولی دوتا حرف عله با هم چی التقاء ساکنن که با هم اومده حرف عله حس میگردد میشود سل نه میشود چی؟ یعنی فاولفل از این سیغه به بعد زمه میگیرد زمانی که مزارعش بر وزن باشد سال یا سولو اما اگر بر وزن یفعلو باشد کسره میگیرد چی میگیرد؟ کسره میگیرد مثل ماله که می شود مل نه ملت ما ملتم ماله تو اگر زیاد کشک بلوچی نخوری به جایی خواهی رسید خب ولی من شنیدم که چند روزی که من نبودم زیاد استفاده کردی از چهرت معلومه شبیه کشک شدی به قال جو که زدید چند دقیقه پیش خب ببریم جلوتر بچها پس سال یسول و تو فهمیدید چه اعلال های رخ داده است تغییری که در معتلمیات داشت میگن اعلال الان فهمیدید چه اعلال های رخ داده است خب یک مثالی زده است سه مثال در امسله اول آورده ساله یسولو سلطو رام یرومو رمتو خافه خافو خفتو در رام یرومو که مثل ساله یسولو هست اما خافه یخافو داستان دیگر متفاوت هست خافه در عصب بوده یخ وفو چون بر وزن یفعالو هست تبدیل به چه شده است؟ تبدیل به علف شده است شده است یا خافو. این خافه باز هم از سیغه ششم بود کسره می گیرد چی می گیرد خافه خافه خافو خافت خافه خافه خفت خفت خفتم ما خفنه خفته خفتمه خفتم لا تخف سنعیده سیرته هل جاهای مختلفی در قرآن اومده است حافظ حافظ سوهل یادت می آید جاهای مختلفی وارد شده است؟ بله خب پس این سروران این بگونه ساده است که دیگر با تاجبه این که قبلا هم خونده اید مال یمیل و ملتو اینا دیگه همشون شون کسره میگیرد فاولفل از سیغه 6 به بعد آشای ایشو سیغه شیشون شی سیغه هفته سیغه این چیهش هست متکلمش هست که آورده هست اشتو حاره یا حارو حیرتو این حاره یا حارو مثل خافه یا خافو هست خب این پس عجواف بود این چی بود؟ پس ما در عجواف آموختیم که در اجواف آموختیم که بستگی دارد که مزارما برچه وزنی باشد برای این که حرکت ماضی آن رو از سیغ شیش به بعد تعیین کنیم برای این که حرکت فاول فیل ماضی رو از سیغ چندون به بعد کنیم 6 به بعد چون از سیغ به بعد دیگر اون لام الف این الفیل ما حصف میگردد این الفیل ما چی میگردد؟ قالا قالا قالو قالت قالتا دیگه نمیگیم قال نه بلکه الف رو حصف میگردانیم این یک قاعده دو حرکت فعل رو یا زمه میدهیم یا کسره اونهایی که مزارشون بروزن یفعولوست بیشون زمریدیم به بقیه کسر می دیگه واضح کردید خب القاعده القاعده قاعده 26م کتاب نحو الواضح هست اذا اسند الماضي الاجوف الى ضمیر رفع متحرك حرک فاؤه بالضم ان كان من باب نصره چقدر جالب و بال و, و بالکسری من باب او فریحه خیلی زیبا گفته به شرطی که یکی بفهمد میفرماید زمانی که ماضی عجوف به زمیر رفع متحرک مسند شود یعنی زمیر رفع متحرک به اون بچسبد خود زمیر رفع متحرک از صيغه 6 تا آخر میچسبد دیگه زرب نه نون متحرک هست یا نیست زمیر ها که همهشون شن رفعند ولی بعضی حرکت دارند بعضی ندارند از شش به بعد همه حرکت دارند این معنی بود که ما ای دیگر بیان داشتیم پس زمانی که مصند شود ماضی اجوف به زمیر رفع متحرک حر که به دم فاؤلفیل حرکت زمه داده می شود ان کان من باب نصر اگر بر وزن نصر یعنی بود اگر بر وزن فعل یفولو بود منظور این است که مزارش بر وزن یفولو بود و بالکسری و فاء فل فا داده می شود ان کان من باب ضرب او فرحه اگر اون اجواف بروازن ف یف ایرو بود مانند ذرب ذریب بود یا براز ف ی ف یف علو مانند فری یفرحو فهمیدید هم. پس مزاره اگر براز یف یا یف باشد مازید از سیقه 6 به بعد از سیق 6 به بعد فعال فعلش کری میگیر بله بفر آساد بله بله نه تا تو ما تمتی تو ما تونه اینا زمیرای رفع متحرکند که در کتاب قبلی هم واضح هم سریح و هم مفصل بیان داشتی البته اگر اگر آنچرا که به مغز مبارکتان سپرده اید هنوز نگه داشته باشد بعضی وقتها خواهند اومد مخصوصا زمانی که بزرگتر شوید الناقص، الناقص، چی؟ نوع فعل موتل بزرگواران ناقص هست سروران دقت بفرمایید های مبارکتان را به تفریح نبرید الناقص، چی؟ الناقص، ناقص بچه ها اونی هست که لاملفل آن حرف عله باشد نقص العضو هست عضو مهمی رو از دست داده است خوب الامثله ال امثله آره مثلا کفش نداره یا لنگ نداره مثلا الامثله چه الامثله خشیتو خشو نهوتو تو علوت علو تو علو استدعیتو استدعو استدعوا اینجا مزید آورد سمت البنت سموان اینجا هم مفرد مؤنث غائب رو آورد میدونید چرا این الان میگم که چرا در این قسمت هیچده تا مثال آورده چون در قسمت ناقص قوانین بسیار زیادند مثلا در مثال بود ما در مازیش قایده ای نداشتیم داشتیم بچه؟ نداشتیم قواعد خیلی کم بودند عجوف داشتیم ولی باز هم کم ولی در این ناقص در مازی داریم سیغه های مختلفش بر وزن فعله باشد فرق میکند بر وزن دیگر باشد متفاوت است بخ... خاطر این امثله زیادی آورده است انتی خب مینا ماضی بودن انتی تسغین انتی تمشین انتی تدعین الرجال یسعون الرجال یمشونه. بینید یس آونه هم جنس ولی ما قبل فتح دارد اما یمشونه جمع هست جمع مذکران جفتشون ولی میبینیم اون زمه دارد ید هم زمه دارد در تسعینه که مفرد موننس حاضر بود قبل زیا فتح بود اما در تمشینه و تدینه کسره بود یعنی چی؟ یعنی میخواهد بگوید که شما مواظه این حرکات باشید در همین یک مفرد محننس حرکت ها متفاوت هست بستگی دارد که برچی وزنی باشد بستگی دارد که در جمع ها همچونی حالا بریم انتما در مسنا برویم تسعیانی انتما تمشیانی انتما تدعوانی الفتیات و یسعین جمع رو دقت بفرمایید قبل از یا اینجا فتح هست الفتيات يمشينا الفتيات يدعونه تغییراتی رو که اینجا رخ داده هست در قواعد آورده است ولی قواعد این درس بسیار زیادند حالا شما بیایید در قواعد تا تمام اون تغییراتی رو که چرا مثلا در متکلم یه جای بود خشیتو یه جای بود نهوتو و یک جای بود علاتو حرکت ها هر سجا متفاوت بودند خشو نهو عالو دیدید حرکت چه متفاوت است. بیاید روی قسمت قواعد که قواعد اینجا یک دو سه چار پنج شش تقایده مربوط به همین درس ناقص هستند اذا کانا دقیق بفرمایید که چقدر زیبا توضیح میدهد اذا کانا ناقصو یا این یا این زمانی که ناقص یایی باشد مانند خشیه ما یا ناقص واوی داریم مانند بله سروه، سرو یا ناقص الفی داریم مانند دعا یا ناقص یایی داریم مانند رضیه و خشیه اینجا دقت بفرمایده اذا کانن الناقص یایین او واویین زمانی که ناقص یایی یا واوی باشد خشیه و سروه سواؤن برابر است اکان ماضیا ام مضارعا برابر است که این ناقص ماضی باشد یا مزارع و اصنی دا الاغیر الواوی او یا المخاطبتی و مصند شود اما به بواب نشود منظور جمع مذکر که چی دارد؟ واب دارد می که مصند شود اما مصند بواب نشود سیغه های دیگه او یا المخاطبه یا مصند بیای مخاطب نباشد مصند بیای مخاطب نباشد مانند, مانند چی؟ تدعو مانند چی؟ یدعو که به مفرد محننس حاضرش ببرید. اونجا دیگه یا میگیرد اونجا چی میگیرد؟ پس میفرماید زمانی که ناقص یا ای یا واوی باشد فرقی نمی کند چه در ماضی چه در؟ مزاره مصند بز... بشود اما بغیر از واویا لا یحدث فیه تغییرون. تغییر تغییری دران رخ نمیدهد تغییری دران رخ مانند یای مانند خشیا خشیه خشیا دیدید مصند به الف شده اما تغییری درش نیومده اما اگر گفته بود به ولی مسند نشود چون اگر به واو بشه در قواعد بعدی توضیح میده چه تغییری رخ میده میگه اگر این مسند شود ولی به واو و یا نه به و یایم مخاطب نه به چیزای دیگه اون موقع تغییری درش رخ نمیده یا این مانند خشیه که ما مسندش میکنیم به الف میشود خشیا خب تغییری درش رخ داده؟ نه تغییری میگه درش رخ نمی دهد فهمیدی آقای سوهید؟ خب بریم جلوتر نه می دونید چی؟ اونا فرق می کند. اونجا فرق می کند شما فعلاً شما فعلاً مغزه ها رو متمرکز کنید روی این مسئله که اگر اگر مازی یا مزاره مصنطان ولی بغیر از واویا یای مخاطب واویای مخاطب تغییری رخ نمیده چه در ماضی چه در مزاره <تصفيق> مثلا یرمی یرمی یایی هست خب در صيغه بعدی میشه یرمیانه تغییری رخ داد رخ نداد بچه رخ نداد خب پس قاعده رو بفهمید زمانی که ناقص یایی باشد مانند خشیه یا واوی باشد مانند سروه سروه سروا رخ نداد خشیه خشیا رخ نداد چه مازی باشد چه مزاره مسند شود اما مسند به واو و یا مخاطب نشود لا یحدث فیه تغییر تغییری در آن رخ نمی‌دهد ببین قاعده 28 اِذا کان آخر الماضی الناقصی زمانی که آخر مازی ناقص علف باشد مانند رماه مانند دعا آخرش چه باشد؟ الیف باشد اذا کان آخر الماضی الناقصی ماضی ناقص رماه ناقصه چون آخرین حرفش الله هست حرفه الله ست یا الاته الف از واویا تبدیل میشه الف منقلبه بهش میگن خب بریم جلوتر پس زمانی که آخر ماضی ناقص الف باشد و اصف نده الى غیر الواف مصند به غیر واف شود مانند رما مانند دعا دقت بفرمایید رما و دعا میگه اگر این مصند شود قبلا گفته بود اگر ناقص یعی و واوی مسند می توشون تغییری نمی اومد. حالا میخواهد بگوید زمانی که ماضی ناقص علیفی علیفی مسند شود اینجا تغییر میآید. و اسند غیر الوف، حتی اگر به واو مسند نشود اونجا اگر به واویا مسند نمی تغییری نمی اومد. اینجا اگر به واو هم مسند نشود میگوید گوید چی می شود. و اصنید الى غیر الواف مصنده به غیر الواف شود مانند رما رميا دعا دعوا آره به غیر الواف باشد اونجا ولی تغییر نمیود اینجا میآید آید دقت انکانه دقیقه ادامه قاعده رو فه انکانه ثلاثی اگر اون فل ثلاثی بود منظور سه حرفی بود منزورش مزید و مجرد نیست منظورش مجرد بود سلاسی منظور مجرد بود یعنی مزید نبود یعنی سه حرف داشت فهنکان و سلاسی اگر سه حرفی بود ردت الالف و الى اصلها الف به اصلش برمی گردد الف به چیش برمی گردد رما و دعا رو دقت بفرمایید رما اصلش رمایه بوده است اگر ما اینو مصند کنیم به واو نه به چیزای دیگه به الف به زمیرای دیگه. به اصلش بر میگردد رما رما یا دیدید که علف به چه برگشت به یا برگشت به اصل خودش برگشت تغییرش اینه دیگه به اصلش برگشت پس فهمیدید سروران ببینید اگر ناقص ما علیفی بود زمانی که اینو مصند کردیم البته بواب نه به زمائر دیگه در این صورت به اصلش بر می گردد علف. اگر اصلش واق بوده واق می شود مانند چی؟ مثل دعاء که اصلش بوده دعوه در سیغه دوم می شود دعاء دعوا دعا به اصلش برگردید و یایی اگر بوده به یا برگردد مانند رما که می شود رمه م. یا فهمیدید؟ نه در سیغه اول علیفه دوم بوده آره فإن كان ثلاثياً ردت الألف إلى أصلها ألف بأصلش برمي جاردت وإن زادة على ثلاثتين أما أغر دقات بفرمايت خلية حرف جالب يا قاعدة مهمية وإن زادة على ثلاثتين أما أغر بشترس حرف داشت مثلاً ما همين يكيس من ناقص هارو دارو دارو آآ مزید میکنیم که بیشتر از سه حرف داشته باشه چون دعا سه حرف داره استدعا به باب استفالش میبریم استدعا اگر اینو ببینید اگر سه حرفی بود و ما مسندش کردیم اگر اصلش واق بوده واق میشود اگر اصلش یا بوده حرف علیتی میشود ولی اگر بیشتر از سه حرف داشت دیگه نه مطلقا تبدیل به یا میشود مطلقا تبدیل به چه میشود زمانی که مصند شد استد رو که صرف میکنیم در سیغه بعدی میشود استد استد عیاء فهمیدید؟ خب بریم جلوتر و انزاده على سلاستین قولیبت الالف یا ان اگر بیشتر از سه حرف داشت الف تبدیل به شود؟ تبدیل به یا میشود گرچه چه واوی باشد گرچه یایی باشد فرقی نمی کند اگر سه حرفی بود به اصلش بر اگر بیشتر از سه حرف داشت چی می شود؟ حرف الف تبدیل بیا می شود استدعا استدعا استدعا, استدعا، استدعت به این شکل که مثل بقیه سرف میشه که میریم جلوتر قواعد رو توضیح داد قاعده بیستونه همه این درس اذا اتصلت تاء التانيث بالماضي الناقص الذي اخره الف ان حذفت الالف این هم قاعده است جالب و مهم زمانی که وصل شود تاء تانیث ماضی ضربت این تار میگن تاء تانیثه بله زمانی که وصل شود تاء تانیث به مازی ناقص اون مازی ناقصی که آخرش علف هست مانند دعا رما دقت بفرمایید میگه اگر تایتانیس اومد به دعا و رما چسبید علف حس میشه پس چی میشه دعا میشه دعت دعا میشه چی؟ پس سیغه چارون هست دعت مفرد موننس غائب دعا دعوا دعو دعت چرا الف هست شد؟ به خاطر همین قاعده به خاطر چه؟ همین قاعده اما اگر کسر داشت اما اگر آخرش الف نمی بود حس نمی شد رزیه رزیه رزو رزیت اینجا یا حس نشد یا حس پس فهمیدید بریم قایده سیوم کتاب اذا اصنیدن ناقصو اذا اصنیدن الناقص ماضیان او مدارعا الى واف الجماعه الان بحث واف رو پیش کشوند زمانی که مسند شود ناقص چه ماضی باشد چه مزارع زمانی که ناقص مسند شود چه ماضی باشد چه مزاره مسند به چه شود بواو جمع زرابو چه مسئله پیش می آید او مدارعا الیاء المخاطبه ببینید چه ماضی چه مزاره اگر بواو جمع مثل یدعونه دعو دعو ماضی شه هم مزارش میگه اگر ماضی یا مزاره به واقع مصند شوند یا مزاره بیای مخاطب مصند شود او مدارعن المخاطب. یا المخاطبه یا مزاره مخاطب شود؟, شود؟ مثل تدعینه مثل چه تدعینه اینجا میفرماید خذفا حرف العلتی حرف ال حذف میگردد بله؟ حرف علیه مثلا در یدعو حرف علیه ما چه هست خب من الان همین مسئله سرش پیش میارم دعا دعوا دیگه دو تا و نمیاری ما و و حرف علیه هست میگردن اون و جمع باقی میمونه میشه دعو میشه چی؟ دعو حالا مزاره یدعوانی در اصل میشود یدعوونه ولی ما میگیم یدعوونه در قرآن هم اومده یدعوونه خب پس فهمیدید؟ یعنی منظور این که در جمع مذکر در چه؟ چه ماضی چه مزاره واب حرف میشه حرف عله هست میشه و در امر در مفرد مؤنث مخاطب جایی که یای مخاطب داریم خب یا مخاطب فقط ما در یه سیغه داریم اونم نه هست در این سیغه حرف عله چی میگردد؟ حصف میگردد حذف حرف ال التي حرف ال له اسم جرائد وباقي الفتحة قبل الواي والياء وقبل الواي يفتح باقي مانات يدعون تدعون دعوا ها اذا كان المحذوف ألفا زمانك أنت تزك حاسد ألف باشات پس فتح امسر جاشتی میماند؟ باقی میماند و ضم ما قبل واو الجماعه و ما قبل واو جماعه چی میشود؟ اگر علیف نباشد اگر علیف باشد دقت بفرمایید. سروران اگر علیف باشد ما قبلش فتح قبل از واویای ح شده فتح میماند فتح باقی میموند مثل یدعونه مثل دعو مثل چی؟ شما میبینید که حرکت چه هست؟ ولی اگر ولی اگر اونی که حسب شده دقیق بفرمایید و ضم ما قبل واف الجماعه ما قبل واف زمه داده میشود مانند رزو چون این الیف نیست که حسب شده رزیا رزیا در بوده رزیو رازی، یو، اینجا یا هست شده، اینجا چه هست شده؟ علف هست نشده. میگه اگر علف نبود، اونی که هست شده، اگر اونی که هست شده علف نبود، دقیق بفرمایید. اگر واف اگر وا، مقابل واف من موقع زمه میگیرد. مثل رازیه، رازیا، رضو، دیدید که قبل واف وافی داره، زمه داره. چون اونی حرفی که هست شده چی هست در رضو؟ یا بوده یا بوده علف نبوده خب آره و کسی ما قبل یا المخاطبه اذا لم یکن و ما قبل یا مخاطب کسره میماند زمانی که علف نباشد خب دقت بفرماید اینجا اینجا دقت بفرمایید. این الان دارد میگوید زمانی که ماضی یا مزاره مصند بواف شوند و همچنین مزاره مسند بیای مخاطب شود حرف اله حذف میگردد این قاعده هست یه قاعده دیگه میموند که چه حرکتی ما بشبیدیم حرف اله که حذف و چه حرکتی میگرد میگوید اگر علف بود اونی که حذف شده است، پس ما قبلش فتح میماند مثل دعاء اگر الف هست کنیم قبل از وات میماند دعوا دعو بس دعاء دعوا دعو مزارش چی میشه خب مزارش طول قبلش اصلش واو هست ضمه میگیره مزارش يدعو هست يدعو يدعوان يدعون همین آره آره بسگی به حرکت داره این هم اصلش الف دیگه چی اصل چی يدعو اصل دعو در مازی بله در مازی علف هست که حصف میگرداد ولی در مزاره نه در مزاره چه هست واف هست در مزاره میبینیم که چه حرکتی میگیرد در چی غصفم یدعو او یدعوانه یدعوانه چه چرا زنبه بش دادی؟ چون اون آنچه که در یاد حصف شده هست چه هست علف است یا بله پس اگر علف هست شد ما قبلش فتح میماند وأجر واف حشود زممي إذا كان المحظوف ألفا ببنية زنجا حذف وباقي الفتحة قبل الواف والياء إذا كان المحظوف ألفان سلام علیکم و رحمت الله و برکات استاد استاد شیخ تو به درس استاد قبول استاد استاد شاکر تو تا حرس جناني ودارنده مواجه از اينو خب بزرگان قاعده رو فهمیدی اگر علیفی هست شد ما قبل چي ميمانت فاطمه ميمانت مانند دعو ولي اگر وضم ما قبل وا و کسی را ما قبل یا المخاطبتی اذا لم یکن علیفا اگر آنچه که حصد شده است نباشد اگر آنچه را که حذف شده است علیف نباشد یعنی واویا باشد دقت بفرمایید قاعده خوبیه اگر اگر اونچه که حصد میشود نباشد اگر واو بود ما قبلشو زمه میدیم اگر یا بود ما قبلشو چه میدیم کسری میدیم مانند تدعینا مانند چی؟ تدعینه. این یا مال مخاطبه واب هست شده در عصب بوده نه. آره آره ببینید ما قبل یای مخاطب ف مخاطب مازیک یا نداره در مزاره ما قبل یای مخاطب چی میگیرد کسره میگیرد اگر اونی که حصد شده علف نبوده باشد مثلا در تخشا در تخشا یا مخاطب مقالش فتحه هست چون آن چه که حصد شده هست علف است میشود تخشای اینا بله چرا فتح گرفت؟ چون اینجا چی چیزی هست شده؟ علف هست شده ولی اگر این بگر از علف می بود، اون موقع کسره می گرفت، اون موقع چی می گرفت؟ پس در مفرد مانس مز... مخاطب یا مقابل یا فتح دارد یا کسره دارد. دیگه زمه ندارد اگر علیفی هست بوده باشد فتح دارد. اگر چیزی دیگر و و اون موقع کسر می این قاعده شماره سیوم بود. اما قاعده سیون درس المضارع الناقص و ناقصه لذی آخره هو الفون. مزاره ناقصی که آخرش الف هست. مانند چی؟ مانند یخشا. مزاره ناقصی که الف آخرش چه هست؟ الف، یخشا. اذا اسم ده الى الف الاثنين. او نون النسوه. زمانی که مسند به الف شود یا نون جمع مؤنث قلبت الفه یا ان الف تبدیل به چی می شود حالا تخشار یخشا رو مثال می زنی. یخشا مسنار رو می آریم می شود یخشایانی دیدید که الف تبدیل به چی شد بله قایده همینو میگه میگه المزاره ناقصی که آخرش الف هست زمانی که مسنده به الف مصنع شود یا مسنده به نون جمع موننس شود الف تبدیل بیا شود این مثال رو دیگه فهمیدید حالا نون جمع موننس رو میاریم. یخشا یخشیانی يخشا یخشون تخشا تخشیانی چون اینجا باز هم الف الف چیه آره یخشینه دیدید؟ دیدید بچه ها چی شد؟ چون نون جمع معنس داریم تبدیل به چی شد؟ الف تبدیل بیا شد گفته بود الف تبدیل به چی میشه زمانی که نون جمع معنس بیاد روشیا الف تبدیل به؟ الف تبدیل می شود. یخشا در مسنا و در جمع تبدیل الف تبدیل بیا میشه یخشیانی یخشینه. تخشینه. نه فهمیدید؟ قاعده میگه مزاره ناقصی که آخرش علف است یخشا زمانی که مسند به علف مصنع شود یا مسند به نون جمع محننس شود خلی نون جمع محننس ما فقط در دو سیقه داریم در این صورت علف تبدیل بیا میشود یخشا در می میشود یخشایانی تخشایانی در جمع هم میشود یخشای نه تخشای نه حل شد رفت دیگه چکه سیقه دیگه نداریم اون نونای دیگه نون جمعه نصفشون نمیگم اونا نون اعرابی هست مجمع... بله در جمع چی؟ در جمع مذکر یخشا یخشیانی یخشانو این قاعده رو قبلا توضیح داد گفت هرگاه مسنده به واف شود حرف الله حصف میگردد حرف الله چی میگردد؟ این در جمع محننس تبدیل بیا می شود حرف عله و در جمع مذکر هم می میگردد قاعده رو در شماره های قبلی خوندیم اما شماره سی و دوم یا قاعده سی و دوم کتاب الامر ناقص امر ناقص کالمدارعی امر ناقص مانند مزارع هست فی جمیع احکامه در تمام احکامه در تمام احکانش چرا؟ حالا میگدم چرا؟ به خاطر این که امر از مزاره درست میشود قوائدی که روی مزاره از قبل پیش اومده اند امر از همین مزارهی درست میشود که قواعد روش پیش اومده اندیگه مثلا شما تخشا رو دارید خب چطوری امر ازش درست میشه؟ حرف مزاره برداشته میشه؟ از آخرش؟ حرف الله چی می شود؟ حس میشه به خاطر این که فعل مزاره هرگاه مجزوم شد مزاره ناقص حرف الله چی می شود؟ بله اگر مزاره بش می گیم علامت جزم می گیم حرف الله اگر امر باشه دیگه نحوی ها می مبنی بر حذف حرفه چون اونو مبنی می دیگه این به همین صادقیست لذا قواعد جدیدی در امر بیاید ما سراغ نداریم اگر ما لان از تو سراغ داری ارز بفرمایید آنها را تمام گوش بکشیم. خب تا اینجای کار مثال اجوف ناقص به فضل خدا تمام شد.